سلام پسر عزیزم، سال 1404 رو به تبریک میگم امیدوارم که یک سالی پر از شادی و خوشحالی داشته باشی و بتونی برای رسیدم به آرزوات بهترین قدم ها رو برداری همیشه موفق باشی، تو پسر خیلی باهوشی هستی و من میدونم که به همه آرزوهات میرسی. از اینکه امسال معلم تو بودم توی کلاس دوم خیلی خوشحالم. مراقب خودت و خوبیای خودت باش، معلم تو خانمه